مجتمع فولاد کویر کاشان با نام تجاری کویر، هلدینگی تخصصی در تولید میلگرد و محصولات فولادی است که زیرمجموعه شرکت تولیدی فولاد سپید فرا به کویر فعالیت می کند. این مجتمع از اواخر دهه 1370 مراحل نصب و راه اندازی را آغاز کرد و از سال 1381 تولید نوارد میلگرد را شروع نمود. این مجموعه میلگردهای ساده و آجدار در کلاس های A1 تا به چهار و سایزهای 10 تا چهل میلی متر شامل کلاف و میلگرد صاف با ظرفیت سالانه سالان قابل توجه تولید می کنند. خطوط تولید آن با تجهیزات وارداتی و فناوری های داخلی و خارجی راه اندازی شده و محصولاتش عمدتا در بازار داخلی عرضه می شود. در سالهای نخست، شرکت با توسعه خطوط نورد و تجهیزات پیشرفته، ظرفیت تولید میلگردهای ساختمانی را افزایش داد. بعد سالها، این مجموعه تولید انواع میلگردهای ساده، آجدار و کلاف را گسترش داد، چند صد نیروی مستقیم را جذب کرد و سهمی از بازار داخلی را کسب نمود. این شرکت در سال 1379 نسب و راه اندازی را آغاز کرد، در سال 1381 تولید را شروع نمود، از سال 1386 وارد تولید تجاری شد و سپس جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کرد. شرکت به صورت سهامی عام فعالیت میکند و دفتر مرکزی آن در اصفهان قرار دارد. سرمایه اولیه 30 هزار میلیارد ریال بود که به بیش از شست و سه هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. مجتمع دارای مجوزهای تولید میلگرد آجدار و ساده و شمش فولادی با ظرفیت اسمی یک میلیون و 200 هزار تن در سال است. محصولات شامل میلگرد آجدار 310000 تن در سال و میلگرد ساده 20000 تن در سال است. این مجموعه دو کارخانه در اسفهان دارد با 250 و 160 پرسنل. ظرفیت تولید کارخانه اول 310000 تن میلگرد آجدار و 20000 تن میلگرد ساده و کارخانه دوم 550000 تن میلگرد آجدار در سال است. مجتمع در بورس با نماد کویر و ارزش بیش از هشتاد و دو هزار میلیارد ریال حضور دارد. مدیران شامل احمد خروش، مدیر آمل حسین حسین زاده، رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خروش، نایب رئیس هیئت مدیره هستند. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب فرابکویر با تسهیلات بیش از هزار میلیارد ریال از بانک ملت فعالیت مالی قابل توجهی دارد. ضمانت ها بیش از 3000 میلیارد ریال است. اما بانک تجارت سهمی ندارد. منابع مالی در بانک تجارت حدود 16 میلیارد ریال است. رشد چهل و دو درصدی داراییها ها و 21 درصدی سرمایه نشان دهنده گسترش ظرفیت شرکت است. سود عملیاتی 18 درصد رشد داشته، اما سود خالص در سال 1400 و سه به دلیل افزایش حزینه های مالی کاهش یافته است. افزایش داراییهای ثابت به دلیل سرمایه در خطوط تولید جدید است. ثبات موجودی مواد نشان مدیریت خوب زنجیره تامین است اما افزایش بدهی ها ریسک مالی را بالا برده است مجتمع فولاد کبیر کاشان با نقش کلیدی در صنعت فولاد ستون تولید داخلی ایران است بانک تجارت می تواند با تامین مالی پروژه ها همکاری خود را تقویت کند اما باید با احتیاط وارد شود